خب بسم الله الرحمن الرحیم الباب السابع اوز الوصلی والفصلی باب هفتم در رابطه با وصل چه وصل و فصل یعنی چه جای باب آخرین باب داری نه دیگه آخرین نیست باب هشتم بیخوریم بعد از هشتم یکی دیگه بیخوریم دیگه تموم بیشه خاتمه چون او گفته بود که معانی در هشت باب و یک خاتمه هست در هشت باب و یک پس دوتا درس ديگه هنوز داري بغير زيل كهنوز نخود ديش الباب السابعو في الوصل والفصل باب هفتم للرابط با وصل فصل هاش الوصل اطف جملة على اخرى والفصل تركه. وصل شهست فصل شهست وصل يعني اطف دادن جملة اي بر جملة اي ديگر وفصل يعني ترك آن يعني اطف ندادن يعني اطف ندادن منظور از عطف با عدات عطف زیادی داری بگه و الکلام قاصر قاصرون الالعطف بالواف کلام ایجا مختصر هست منحصر هست فقط در عطف دادن به وسیله واف، فقط در رابطه باتی عطف دادن به وسیله وف لان الاتف بغیرها لا یقعو فیه اشتباهون زیرا در کاربرد به غیر از واو یعنی با ادات دیگه عطف اشتباهی رخ نمیدهد لان الاتف بغیرها لا او فیه اشتباه زیر عطف به غیر از واو لا او فیه اشتباه. اشتباه, اشتباه اشتباهی در شواقه نمیشه چه نوع اشتباهی اشتباهی که از درس بی پس واصل یعنی عطف دادن جمله بر جمله دیگر و فاصل یعنی ترک کردن اون عطف ترک کردن او وبلزور از عطف فقط قاصر است در بحث عطف با واو در بحث عطف با من الوصل بها والفو... والفصل مواضعه و مرااهده أز, از وصل وفصل وسیله واو و فصل از وصل وفصل فصل چه دارد جایگاهی ابتدا های وصل به وسیله واو بیاره مواضع الوصل بالواو جاهای وصل به وسیله واو واجب الوصل فی مواضع میگه واجب هست وصل در دو جا در دو جا واجب هست که ما با چیکار کنید وصل بکنیم یعنی عطف بدیم با واف عطف بدی با چی بحثای باهم بیاد دقت داشته باشید الاول اذا تفقت الجمله ا جملتان جایگاه اول که واجبه باید وصل بشه زمانیست که دو جمله با هم متفق باشند خبران او ارشان از جهت خبری بودن یا ارشایی بودن و کان بینه همه جهتون جامعتون و یک جهتی جامع و یک جامعه بین اون دو جمله وجود داشته باشد، ای تو تامبه یا مناسبتی کامل و لم یکن مانعون من الاطف و مانع اطفی موجود نداشته باشد نحفو مانند ان الابرار لفی نعیم همان ابرار در نیمت ها هستن پس ابرار در نیمت هستن و ان الفجار لفی جحیم و بدکاران در آتش خب. اینجا اطف داده ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی چهی؟ هر دو تجامل چه اسان؟ خبریه. هر دو خبریه. و و معنی فلیم حکو قلیلا و کسی فلیم حکو و لیبکو کثیرات مهم عت این فلیم حکو قلیل هر دو تجامل یجات چه اسان؟ انشا هر دو تا چه لا من أمره هو فعل مظاهره مدى فاليضحكوه تصبح عن داد واليبكوه ماذا تحدث مع موسى؟ نعم جامع بين اند جبلة ان الابرار اللي في نئيم و ان الفجار لفي في جهيم كيبوت؟ جامد تذاد بود که بین هر دو بسند و هر دو مسند اونه وجود داشت بسند در این دل ابرار هست و در این فجار فجار هست بسندی لیه هم لفی نعیم و لفی جحیم آه در نعیم بودن و در آتش بودن که اینا ضد ده همه که اینا چی هستن پس دی بود جامد که بین هر دو بسند و دو بسندی لیه وجود داشت اما در دو سال بعدی فلیبکو فلیبحکو قلیلا و کثیرا جامعه این دو جمله شبه شبه تزاد بود و تضاد و این پس یکی از جاهایی که باید وصل بشه است که دو جمله از جهت خبر یا ایرشا بودن با چی بودن؟ متحد بودن و بین دو دو تا جامعی وجود داشت و معنی از اطفی هم وجود نداشت که در جلوتر بیخوبی که معانی چه اثری اگر اوه هم ترک ال اطفی خلاف المقصود دو جایی که باید دو جمله با هر وصل بشند زبانی هست که اگر عطف ترک شود این چیز به وحد بیاید که چیزی که بر خلاف المقصود بوده است در یک و... در یک بیاید. ببینید، دقت داشته باشید. دو جایی که وصل کردن چه هست واجب است زمانی است که اگر اضافه ترک کنید، بر اون چیزی که خلاف مقصد هست. در یک بیاید. در چی بیاید؟ بتشکل، آن با, با بسال روشنیش میکنه. کما اذا قلت من که زمانی که بگویی، لا و شفاه الله، نه. و الله او را شفا دهد جواباً لیمه یسالوک اینو در جواب کسی بگویی که از تو هل برئ علی من المرس؟ المرست آی علی از مریزی شفا پیدا کرد اگر تو اینجا لا رو اول بگی و وصل رو ترک کنی وابو نیاری اون موقع معنیش چی میشه؟ دعای میشه. میشه بیشه لا شفاه الله لا شفا الله لیزه اینجا یه چیزی در وحد بیاد پس اینجا با ترک عط برخلاف مقصد وحم بيشه برخلاف مقصد چه بيشه لذا انجا واجبه كه وصل بيان انجا ديگه نمیتوني بيگم لا شفاه الله بلکه بيگم لا وشفاه الله بتواجه شده مولا بي فترک الواب يوهب والدعاء عليه ترکردن الواب درين جو بلي وحم دعاء براليهش رو بياره وغرضو كه الدعاء له در حالي كه هدف تو چی بوده است؟ دعا کردن برایش بوده است نه بر علیهش پس اگه بگی لا شفاه الله اون موقع گرچه غرض تو این بوده که براش دعا کردی ولی این وهمو بیاره که تو بر علیهش کار کردی دعا کردی پس اینجا مانه وجود داره اینجا چی وجود داشت؟ مانه مانه وجود داشت بله خب اینجا چرا نتونستیم؟ اولا به دو جهت یکی این که موقعی که از تو میپرسن هل بری علی یا نمیل تو موقعی که بگی لا در واقع اینجا چیز رو حصف کردی در واقع اینجا چیز رو چکا کردی؟ لا بریعه این خبریه هست این هست؟ و شفاه الله الشایی هست درست لفظن شفاه الله الله جمله فعلیه هست فعل ماضیه شفاه الله اما معنن چه هست معنن انشایه هست معنن چه هست پس شفاه الله شفاه هو فعل ماضی مثل رضی الله عنهم این درست جمله خبری هست ولی دعا هست ولی چه هست پس اینجا ما نمیتونیم وابا ترک کنیم به خاطر چیزی که خود کتاب گفته بود اما مواد الفصلی جاهایی که باید فصل بشه جاهایی که نباید وصل بشه یجب الفصلو فی خمستی موادع واجب است فصل در پنجا الاولو ان یکونه بین الجملتین اتحاد تام بود یکی از اون جاهایی که فصل واجب هست زمانی هست که بین دو جمله اتحاد کامل وجود داشته باشه به انتکون ثانیت و بدلا من الأولى، بگوری که جمله دوم بدل از جمله اولی باشد اینجا دیگه نمیتونیم واضو بیاری چون تامودن اتحاد تامش به هم میخوره اتحاد تامش میشه؟ نه و تقل لذی امدکم بی تعلمون امدکم بانو... بأنعام وبنين اینجا واتقل لذی امد کم بما تعلمون یک جمله امد کم با نعام و بد جمله دیگر ولی این جمله بدل از جمله قبلیه این جمله بدل از جمله قبلیه امد کم بما تعلمون امد کم با بانع... نعام و بدی مردی شدی ماموسا؟ او با ان تکون بیان الله پس چه زمانی بین دو جمله؟ اتحاد تا وجود داره یکی اینکه جمله دومی بدل از جمله اولی باشه یا اینکه جمله دومی دو بیانی باشه برای جمله اولی فوسوس وس الیه الشیطان فوسوس الیه وسوسه کرد به او شیطان این وسوسه چی بود خودش داره بیانش میکنه در جمله بعدی وسوسه این بود که قال یا ادم هل ادل لک الا شجره الخلد و ملک لا یابلا و واس وسوسه شیطان به آدم این جمله بود خودش داره بیانش میکنه گفت ای آدم ها تو راهنمایی به درختی نکنن ها متوجه شدید پس جمله دوم اگر بدل از جمله قبلی بود بین این دو تا جمله اتحاد تا وجود داره یا اینکه جمله دوم بیان جمله اولی بود دیگه دیگه نمیشه چکار کرد فاصل کرد اینجا نمیشه وصل کرد اینجا نمیشه؟ وصل کرد چون جمعه کاملا با هم یکیه تو نمیتونی از همدیگه دیگه جدا شد کنید واو معنیش این میشه که ما یه جمعه دیگه رو به جمعه قبلی چکار کردیم؟ باید متوجه شدید پس زمانی که اتحاد تام وجود داشته باشه باید حاصل بشه او با انتکونه معکدتا لها یکی از حالات دیگه که باز هم جز اتحاد تا این است که جمله دوم در تأکید جمله اول باشد جمله دوم چه باشد؟ نحو فمحلل کافرینه فمحلل ال... خب جمله بعدی دوباره میاد تأکیدش بکنه امحل هم رویده کافرین رو, رو مهلت بده محلتشون بده پس جمله دوم اینجا که امحل هم رویده باشه در تأكید فمحل الکافرینه هست ویقالو في هذا الموضع ان بین الجملتين کمال الاتصال در اینجا اینجوری هم گفته بشه که بین دو جمله کمال اتصال وجود دارد کمال چی وجود دارد؟ پس از جاهایی که باید فصل بشه زمانی که بین دو جمله اتحاد تام وجود داشته باشه، ازسانی دو یکونه بین جمله تی تبایلتانان بر عکسش بین دو جمله تباول وجود داشته باشه. بین دو جمله چه وجود داشته باشه؟ به یختلی خواه خبرن و انشاه به ای که از جهت خبری و انشااع بودن با هم دیگه چی داشته باشند؟ فرق داشته باشند کهقولیی مانند قول شاعر؟ وقال الرائدهم أرسوا نزاولها فحتفوا كل مريد يجزي بمقداري فحتفوا كل مريد يجزي بمقداري رائد رائد عنان بعدها قلت أرسوا نزاولها بمانید تا پیکار کردن جمع کردن را پیش خود بسازیم، فقط و كل امرئ ریجری به مقداری مرگ هر شخص بر اساس تقدیر جریان پیدا می کند خب اینجا دقت داشته باشید dari جمله وقال الرائدهم ارسو نزاولها ارسو فعل شيء فعل امر وفي جز جزء جمله هاي ان شاء الله ارشاه بس اما نزاول هي است فعل مضارع وخبري است بس ما نريد بيها يوصلش كوليم وقال الرائدهم ارسو ونزاولها بعد فصل بشي چون دو تا جمله از جهت خبری بودن و از جهت ارشای بودن با هم دیگه فرق دارن. یعنی تباین تام بر شروع وجود داره. تبایون تام بر خلاف قبلی. پس تبایون تام به چه شکل هست؟ از این جهت هست که الله هز خبر یا انشابه هم دیگه تفاوت داشته باشن او به الله یکونه بینه و في المعنى یا یعنی اینکه از جهت معنا بین تا مناسبتی وجود نداشته باشه که قولی که علیون کاتبون الحم، الحمام طایرون مانن این جبله علی نویسنده است کبوتر پرنده است خب اینجا ما نمیتونیم اینا رو چکار کنیم واسل کنیم چون علی با حمام الزميل تاسمان باهم ديكي چه دارن؟ فرق دارن فإنه لا مناسبة في المعنى بين كتابة عليا وطياران الحمامي كل مناسبة در معنى بين نوشتن عليا وبين ترواز كبوتر وجود؟ نا ويقال في هذه المواب ان بين الجملتين كمال الانقطاع درين جايقاه گفته میشه که بین دو جمله کمال انقطاع وجود داره همانطور که در اولی گفته میشد کمال اتصال وجود داره اینجا گفته میشه که کمال انقطاع وجود داره الثالث سفو بجایی که باید فصل بشه و نباید وصل بشه چه زمانیست؟ کون الجمله جوابن ان سؤال نشع من الجمله الاولا جمله دومی جواب سوالی باشد که از جمله اولی فهمیده میشه دقت داشته باشید جمله دومی جواب جواب از سوالی باشد که اون سؤال از جمله اولی فهمیده بشه که قوله زعما الاوازل انني في غمرة صدقوا ولكن غبرتي لا تجد گمان کردند سرزنش زنندگان یا سرزنش کنندگان که من در نهایت غصه هستم صدقو. راست گفتند خودش جواب داده این جواب معنیش اینه که در اولی چه ازش سوالی فهمیده میشه در اولی چه هست بله ولیکن غمرتی لا تجلی اما شدت اندوه من آشکار نمیشود پنداشتن سرزنش کنندگان که من در نهایت اندوه هستم در این چیز راست گفتند ولی اما شدت اندوه من عشکار نمی شود پس اینجا با توجه به صدقو ما با توجه میشیم که از قسمت نخص این جمله چی فهمیده شده است؟ سوالی. سوالی پس اینجا ما نمیتونیم بگیم زعب العوازل و اندنی فی غمرت و صدقو و بعد فصل بشه بعد چی بشه؟ الرابع 4 مجا أن تصبق جملة بجملتين يصح أطفها على إحداهما لوجود المناسبة وفي أطفها على الأخرى فصاد 4 مجاي كي بايد فصل بشي زمانيست كي يك جملة قبل أز دو جملة بي آيات. يك جملة قبل أز دو جملة بي آيات كي صحيح باشي جملة قبلي بر یکی از این دو تا جمله خاطر مناسبتی که وجود داره اما بر دیگری صحیح نباشه عطف دادنش بر دیگری صحیح نباشه فاسد باشه فیوت را کل عطف و دفعن للوه پس در نتیجه اطف کردن اینجا ترک بشه تا وحد پیش نید چه وهمی؟ اگر اطبیات بیاد شاید این وحد پیش بیاد که بر اون جملهی که درش فاسد بوده عطفه هم پیش بیاد در ذهن که این عطف بر کدومی که از دو جمله های بر همونی که عطف دادن برش درست نیست که قوله مانند این شعر شاعر وتور سلمى انى ابغي بها بدلا و في الضلال تهيب سلما گمان میکند که من در طلب شخص دیگری هستم بیا بمون جا؟ عبقی بیا بمون سلم رو میتونم گمان میکند که من در طلب خودم بدلی به جای آن هستم نه ادامه داره و نه و تورن و سلم رو و سلما بی میپندارد که من میخواهم او را بدل کنم با کسی دیگر و میپند دارد که من در طلب شخصی دیگه ای هستم. متوجه شدید؟ اورا ها ف بلال تهیب و او را سرگردان در گمراهی میبیم. او را سرگردان در چی می یا می بینش در گمراهی سرگردان است می بیننش که در گبراهی چست؟ سرگردان است خب اینجا جمله ها چه هستن یکی تو ابغیبه ها اگر ما بیاییم اوراها رو بر جمله تولو عطف کنیم درسته دقت کن ما دو تا جمله داریم و تو ولنساء اندی ابغا بها بدلن اوراها فی ضلال تهیب عطف کردن اوراها بر تظرن و صحیحه چون هر دوتا خبریه هردوتا هر چی خبریه هست معنیش این موقع چنین میشه؟ سلما میپندارد که من به جای او کسی دیگر را میطلبم سلمان میپندارد که من به جای او چکار میکنم؟ من او را سرگردان در گمراهی میپندارم من اورا سرگردان در چی میپیندارا؟ اما اگر ما بیم اینجا اتفدیم مشکل چی پیش میاد؟ اگر ما بیم بگیم و تظن نسل ما اندی ابغی به ها بدلا و اراها فی ضلال تهیبو اللحاظ معنوی چی پیش میاد حالا ما کاری به وزن و پسنا نداریم اون موقع معنیش اینجوری میشه آه. و گمان میکند سلما که من به جای او کسی دیگر را میخواهم و گمان میکند معنیش اینجوری میشه و گمان میکند که من او را در گمراهی سرگردان میبینم اگر واغ اتش بیدیم ها رو بتزننو معنیش اینجوری میشه بله, اون. بله متوجه میشید بله. اون موقع بله. گمان گمان میکند و گمان میکند که من او را در گمراهی سرگردان میبینم در حالی که اینجوری نیست در حالی که اینجوری متعجب شدیم آموسا وَتَظُنُّ سَلْمَا أَنَّنِي أَبَغِي بِهَا بدلاً اراها فی الضلال تهیمو اینجا صحیح هست که ما اراها را عطف بکنیم بر تظلو. اما اگر اومدیم و عطفش کردیم اون موقع چه تواهمی پیش میاد؟ اون موقع این مسئله پیش میاد که اورا حفی بالا لتهیمو از پنداشت سلما هست نه مال شاعر نه بالکی بله اگر ما بیایم الان معنی جمله اینجوریه وبی پنداره سلما که من در طلب شخص دیگر به جایش هستم و من الان معنی شرینه و من شاعر او را در گمراهی در گمراهی در گمراهی سرگردان میبینم بی و, و من شاعر او را در گمراهی چی میبینم حالا اگر اینجا اقواب اطمی بیاییم اون موقعی جوری در و گمان میکند سلما که من در طلب شخص دیگه به جایش هستم و گمان میکند که من او را در گمراهی سرگردان میبینم بگه این دو تا معنی فرقش چیه؟ ما مصابیتواجیمشی چیه؟ فرق اینه که فرق اینه که بحث رو اینه که در, در معنی اول اینه که سلما گمان میکنه که من دیگه دوستش ندارم در فکر اینم که یک جایگوزیری براش پیدا بکنم بله. ولی بعدن آخر شعر چی میگه؟ شاعر میگه در این پرداشتش به خطا میره شاعر میگه سلما در این پرداشته خودش به خطا میره اما اگر آتش کنی اون موقع معنی کاملا نواز میشه میشه س... جا خودشه تو اوراها صحیح است اطفاله تا وضو جمله اوراها صحیح است اطف کردنش با چی بر تظنو لیکن یملعو من هذا توحب العطفی الى جملتی ابغیبه اما مملوح هست از این چیز ما نمیتونیم اراها رو عطف بدیم به تظنو چرا؟ به خاطر این که توحب کردن عطف دادن به جمله ابغیبه ها بیاد ببینید اینجا دقت داشته باشیم اگر ما بیاییم اوراها رو عطف بدیم اون موقع این توهم پیش میاد که اوراها رو ما عطف دادیم به عبغیبه ها عطفش دادیم به چه؟ یعنی اینجا دو تا پنداشت سلمار داشته یکی پنداشته که من در طلب کسی دیگرم یکی پنداشته که من او را در گمراهی میبینم چند تا پنداشت؟ دو تا پنداشت لذب خاطر این که این تواهم پیش میاد که اوراها و ابغیبها هر دوتا از بنداشتهای های و حسن نمیتونیم چکارش کنیم؟ عطفش بریم پس جبله اوراها صحیح است عطف کردنش برتزونو هیچ مشکلی پیش اما این وحب پیش میاد که عطف دادن بر جبله ابغیبها است لیکن یعنی من هذا؟ توهم العطفی على جملت ها اما چه چی چیزی معنی میشه که ما اراها رو عطف ندیم به تظنو ببینید صحیح هست خلاصه بگم صحیح هست که اراها رو عطف بدیم به تظنو اما چه چی چیزی معنی شده که عطفش ندیم به خاطر این که شاید در وهم نیاید که این اراها عطف داده شده است به ها عطف داده شده است به چه؟ که اگر اون موقعی رو توهو بیاد معنیشم توضیح دادم فتکونو الجمله الثالثه بالمغنونات سلما در نتیجه جمله سبوبی یعنی اوراها از گمانهای که شمرده میشه اون موقع سلما شمرده میشه معنه ليس مراد در حالی که این چیز مراد مراد شاعر نبوده است در حالی که این مراد شاعر مراد شاعر اصل چیز دیگه است و یقال و گفته میشه بین الجملتی دیدی سی ها و هو کمال انقطاع بین دو جمله در این جایگه کمال انقطاع وجود نداره آه؟ چون لحظ خبری بودن یا انشای بودن فرقی نداره مونتها این جمعه وجود داره این وجود داره؟ پس لذا ایجابش میگن ش بگن هو کمال الانقطاع این نمیگن کمال انقطاع وجود داره آه؟ بلکه چی وجود داره؟ شبه کمالی. خب، علامت واجدش دیده دو تفاوت رو. پنجین جا، خامس و جا و آخرین جایی که ما نمی‌تونیم. وصل کنیم. آصلاً الله یقصد تشکیل جملاتی، فی حکم، لقیام مانی. پنجین جا این است که. قصد نمی شود که دو جمله در حکم شریک شود که دو جمله در حکم با هم چی شود؟ به خاطر وجود داشتن بانه. به خاطر وجود داشتن پس پنجبین جا است که گوینده نمیخواهد خواهد در دو جمله دو جمله را در حکم شریک سازد به خاطر وجودمانه. به خاطر چی؟ كقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لق الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيلهم يعمهون جملة الله يستهزئ بهم لا يصح أطفا على إن معكم جمله الله یستهزیو به بهم که در ابتدای آیه شروع بشه است که ما بیایم اتفش بدیم با انا معاكم قالو انا معاكم قالو انا معاكم انا ما نحنو مستهزیوون گفتن ما با شما هستیم یعنی با شما ما تا داریم استهزام میکنیم ما رو معنی کنیم و زمانی که ملاقات کنند منافقین کسانی را که ایمان آوردهاند میگویند ما ایمان آورده ایم و زمانی که با های خودشان خلوت شوان با منافقین حمله خودشان خلوت کنند میگویند نه بابا با شما منافقین هستیم ما اونا رو را مسخره کرده ایم الله مسخره میگیرد آنان را خب حالا بگه جمله اللہویستوازیو بهم لایسیحو اطفا على ادنابع که صحیح ریس اطف بر جمله ادنابع چرا لیقتزائیه انهو من مقولهم چون اگر اتفش بدیم دقیق داشته باشی چیز قشنگی میگه اگر اتفش بدیم این چیزو اقتزا میکنه که الله یستهزئو بهم بازم باز هم از مقول همین منافقینه از مقول که انا معا کم انا ما نحنو استهزئون و اللهو یستهزئو به اتفش دادیم به انا أز ماقول قولة هم المراصدين بشباب. ما تقول شو ديت؟ خوب. أنه من مقول ولا على جملة قالوا. وهم ترى النبي ترى برجهم ليقالوا شكارش كلهم. عاد. عاد بدي. لاعتزائه أن استهزاء الله بهم مقيد بحال قلوبهم إلى شياطينهم. <تصفيق> چون اگر ما اومدیم اینو عطف دادیم به قالو اون موقع اقتضا میکنه که استهزای الله متعال به اینها زمانی است که در حالتی است که با شیطانهای خودشون خلوت کرده اند زمانی است که با شیطانهای خودشون چج کرده و اذا لق الذين امنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما, يه... إنما نحن مستهزين الله يستهزئ بهم اگر ما بقالوا إذ أن تصدف بشكل متفح 력 إلى إذن ، الله يستهزئ بهم زمانست إذ آخ رقوا له الشياطينهم وقالوا آمنا وإض آخ رقوا له قالوا قلوا معكم عندما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم فس نميشه بقالوش اتفشداد ونميشه بأنه معكم چه كارش کرد؟ اتفشداد كل معنى وجود داره كل چي وجود داره؟ اللحظر معنى يه فساد مياد كمياد؟ ويقال في الجملتين بين الجملتين في هذا الموضع توسط بين الكمالين در اين حالت كميان؟ بيان بين دو جمله چه وجود دارد؟ توسط بین الكمال الوجود دارد توسط یعنی بین کمال اتصال و کمال انقطاع توسط بین الكمال منظور وسط بین کمال اتصال و کمال انقطاع تا اجای کار کافیست موثقو پیروز بست